فصل چهارم رو همچین کار خاصی نداشتم این شد که رفتم دستشویی پیش استراتلیتر تا وقتی داره ریش میزنه با سر این اونفک بزنیم تنها بودیم بقیه رفته بودن تماشای بازی دستشویی جهنم بود و پنجره رو بخار برداشته بود اونجا ده تا روشوی داشت همم هم رو به دیوار سردویتر جوری روشوی وسطی وایستده بود رفتم نشستم رو روشوی سمت راستش و شیراب سرد و هی و بسته کردم اینم از اون عادتی عصبیم بود سردویتر ریش میزد و آهنگ ترانه هندو با سود میزد سود زدنش انقدر زیر و نکرست که هیچ وقت کوک نیست و همیشه خودم آهنگ انتخاب میکنه که زدنش حتی اگه سوتزن ماهریم ماهری هم باشی سخته آهنگایی مثل ترانه هند یا کشتار توی خیابان دهم ده خلاصه بجوه تر میزنه به آهنگا یادت گفتم اکلی عادت گندی داره؟ خب استردلیتر هم همینطور البته شکل گند بودنشون با هم فرق داره استردلیتر گند بودن مخفی تری داره هر وقت می آراسته به نظر می رسه بعد باید به تیغ ریشتراشش یه نگاهی بندازی همیشه خودا کنده و پر از مور کثافت عمرن اگه تمیزش کنه وقتی خودشو مرتب میکنه تر تمیز به نظر میرسه ولی خب این عادتهای قائمکی هم داره البته باید به من بشناسیش تا بفهمی تنها دلیل تر و تمیز کردن خودش خودشیفتگی بیاندازشه خیال میکنه ترین آدم نیمکره غربیه البته قبول دارم پسره خوشتیپیه ولی از اون مدل پسر که اگه پدر مدر تکس شد توی کتاب سال دویرستان ببینن درجم میپرسن این پسره دیگه کیه؟ یعنی میخوام بگم از اون خوشتیپای کتاب سالیه خیلی رو توی پنسی میشناسم که گمم میکنن از استرد لیتر خوشتیپترن ولی اگه توی کتاب سال ببینیشون میفهمی که خبری نیست همونه که انگار دماغ بزرگی دارن و گوششون هم درازه خودم همچین تجربه <تص> کنار دستش نشسته بودم و داشتم آب بازه بسته میکردم هنوز کلا شکاری قرمزم سر و ته سرم بود هیچی نشده حسابی کلا چلونده بودم سرد لیتر گفت هی hey, یه کار به درد بخور برام بکنی؟ چه کاری؟ خیلی هم مشتاق نبودم همیشه یهو کاری ازت میخواد هر وقت به یکی از این خوشتیپا یا اول صفهیا میرسی ازت میخوان کار بزرگی تر حقشون بکنی چون از خودشون خیلی متشکرن خیال میکنن تو هم ازشون زیادی متشکری و کشته شونی خیلی مسخر است امشب میری بیرون ممکنه برم ممکنه نرم نمیدونم چطور باید برای کلاس تاریخ دوشنبه صد صفحه بخونم میتونی واسه کلاس انگلیسی انشا بنویسی اگه ننویسیش تو بد درد سری میافتم. این کارو میکنی برام؟ خدایی به این میگن موقعیت جوک من از اینجا بیرون کردن اون وقت میخوایی تا دوشنبه برات انشا بنویسم آره میدونم ولی خب من تو بد درد سری میافتم رفاقت کن رفیق باشه زودی جواب ندادم تو خماری گذاشتن آدم عوضی مثل استردلیتر واقعا لازم بود موضوع شیه هرچی هر چیزی که توصیفی باشه یه خونه یا اتاق یا جایی که یه موقع توش زندگی میکردی فقط توصیفی باشه هرچی میخواد باشه دهنشو این اسب آبی باز کرد و خمیازه کشید این کارش خیلی حال به هم زنه خدا ای ته تهزایه است وقتی داری از کسی میخوای برات کاری انجام بده خمیازه هم بکشی گفت خیلی هم خوب ننویسهش اون هارتزل عوضی فکر میکنه بهترین شاگرد کلاس انگلیسی و میدونه تو همتاقیمی لازم نیست نقطه کاماتم هم درست باشن اینم خیلی زایه است خیلی بعد تو خوب این شابه و یکی بخواد از نقطه گذاریت ایراد بگیره سردویتر همیشه همینطوریه الان یعنی میخواد بگه دلیل اینکه که بعد مینویسه نقطه گذاری اشتباهشه؟ از این با بعد بگی نگی شبیه اکلیه یه بار سر بازی بسکتبال کنار دست اکلی نشسته بودم بازیکن خوبی داشتیم به اسم هاوی کویل که از همون وسط زمین چشم بسته و سبد تمام طول بازی اکلی یریز می کویل کایل بهترین بازیکنشونه وای که حالم از اینطور حرف زدن و به هم میخوره دیکان نشستم توی دستشوی خستم کرد از جون پا شدم و رقصه زدم این کار سرگرم میکرد رقص پوزن ماهر نیستم ولی روی زمین سنگی خوب میشه رقصید. اده یکی از این هنر ها رو در میوردم. یکی از اون بازیگرهای فیلم های موزیکال سینما خیلی گوهه ولی خب اینگارشونو خیلی دوست داشتم تقلید کنم استرد از آینه نگام کرد پسر فقط یکی رو کم داشتم که نگام کنه اصافی آدم جوگیری هم گفتم من بچه ای فرمان دارم داشتم خودمون میکشتم اون وسط از بسک ورجه ورج وورجه میکردم بابام نمیخواد این کاره بشم میخواد برم آکسفورد ولی این کار تو خون منه استردلیتر خندید شوخیارو خوب میگرفت امشب افتتاحیه نمایشگاه زیگفیلد فولزه نفسم داشت بند میومد همیشه نفس کم میارم نقش اصلی نمیتونه بره روی صحنه بعد جوری حالش خرابه کی رو میذاری جاش؟ منو بعد باید بزاری جاش من پسر کچیکه فرماندار پرسید اون کلا از کجا آوردی آقا تازه دیده بودش از نفس افتادم ههند کنان کلا برداشتم و برای نو دومین بار بهش نگاه کردم امروز صبح از نیویورک خریدمش یه <تصفح> <تصفح> دلار خوشت میاد ببین انشالله برام مینویسی بگو تکلیفم رو بدونم اگه وقت کنم می اگه نه هیچی دوباره نشستم روی روشویه کنار دستش با کی قرار داری؟ فیتس نه بابا گفتم که دیگه با اون بد قواری خیلی کاری ندارم جدی؟ خب خب پاسش بده به من جدی میگم به هم میاد واسه تو؟ ولی برات بزرگه همونطور که نشسته بودم یه حواس مسخره بازی کردم دوست داشتم بپرم گردن استفرد لیتر بگیرم اگه نمیدونی چرا باید بگم وقتی میپری گردن رو کسی ها میگیری و میخوایی خفش کنی انگاری داری کشتی میگیری منم همین کارو کردم عینه ببر پریدم رو سرش حال دم بس کن حسلیم مسخره بازی نداشت داشت ریشش رو میزد چی کار میکنی تو اینجوری رگم رو میزنم و ولش نکردم قشنگ زیره خمش رو گرفته بودم. اگه میتونی خودتو نجات بده عجبا تیغو کنار اندخت و فرز خودش آزاد کرد خودش خیلی قوی بود ولی منم خیلی ضعیفم. دیگه بسته دوباره شروع کرد به تراشیدن صورتش همیشه صورتش رو دوبار پشت سرم میزد تا تمیز به نظر بیاد اونم با همین تیغای زپرتیش اگه فیتس جرالد نیز پس کیه دوباره کنار دستش نشستم فیلیس اسمیته؟ نه قرار بودم باشه ولی برنامه به هم خورد. با دوست همتاقی باتاو دوست شدم راستی آدم رفعه بگم اون میشناختت کی؟ همون که باش قرار دارم میشناستم اسمش یه موضوع جالب شده بود فکر کنم چیز جنگلگر میخواستم آب بشم. جینگلگر؟ اسمشو که برد از جا بلند شدم. نزدیک بود پس بیافتم. آره که میشم مثلا تابستون سال پیش همون بود. یه سگ دوبرمن بزرگ داره. سر سگ باهاشش نشدم. سگش سگش میومد ای ما. هالدن صاف رفتی جلوی نور رو گرفتی. اَد بعد اونجا وایستی. پسر اگه بدونی چقدر هیجان زده شده بودم. الان کجاست؟ باید برم بهش سلام کنم کجاست دوان اکسه؟ آره چی شد اسم منو برد؟ الان رفته بیم؟ میگفت ممکنه بره اونجا میگفت شایدم بره شیپلی فکر کردم رفته شیپلی چی شد اسم منو برد؟ خیلی هایجان زده شده بودم خیلی من چه میدونم؟ بکش کنار ببینم نشستی رو حولم آره نشسته بودم رو این مزخرش ویلکون نبودم جین خدای بزرگ داشت از بربانتین من به مواش می زن. اون رقاص خوبیه باله و این حرفو روزی دو ساعت تمرین می هوا گرم بود ولی تمرین می نگران بود پاهاش پت و پن بشه من همیشه باهاش چکرز بازی می کردم. همیشه باهاش بازی می کردی؟ آره چکرز بازی می فوای خدایا آره هیچ وقت شاهشو تکون نمی داد. وقتی شاهداش کار تموم بود همه رو ردیف آخر چیده بود و تکونشون هم نمیداد یمونم از شکل اون همه مهره که کنار هم ردیف شده بودن کیف میکرد چیزی نگفت اینجور حرفا معمولا برای کسی جالب نیست مامانش از همون باشگاه گلفیه که ما هم بودیم گاهی میشدم پادو یه چند هم پادویی مامانشه کردم اصلا گوش نمیکرد داشت ماهی قشنگشو شونه میکرد. بهتره برم پایین باهاش حال احوال بکنم پس چرا نمیری؟ همین الان میرم دوباره مشغول صاف کردن شد یه ساعت تمام کارش طول میکشید مامان باباش طلاق گرفتن مامانش با یه الکولی دوست شده یه بخور عوضی که پاهای پرمویی هم داره یادم میاد همیشه خدا شلوار کوتاه میپوشید جین میگفت قرار بود نمایش نویس خوبی بشه ولی تمام مدت فقط میخوره میگفت همیشه هم میشه پای رادیو برنامه جنایی گوش کرده همش تو خونه ولنگواز میگشته خجالت نمیکشیده. نمیکشته جدی استرادلتر از این یکی خوشش اومد بچه گیه مزخرفی داشته جدی میگم. آقا به این یکی علاقه نشون نداد جنگلگر خدای من نمیتونم از فکرش بیام بیرون جدی میگم. بعد برم پایین باش حال احبال کنم ده پاشو برو دیگه منتظر چی هستی رفتم کنار پنجره ولی بیرون معلوم نبود بخوره یرمهی اتاق گرفته بودش الان حالشو ندارم واقعا نداشتم برای این کارو باید حسابی تو مود باشی فکر کردم رفته شیپلی یعنی مطمئن بودم رفته اونجا یک کمی توی دستشوی قدم زدم کار خاصی نداشتم از بازی خوشش شما؟ آره یمونم نمیدونم بهت گفت چقدر چکرز بازی میکردیم؟ یادم نیست چه میدونم من یه بار بیشتر ندیدمش بابا شونه موهایی مزخرفش که تموم شد وسایلشو جمع کرد ببینم سلام منو بهش میرسونی؟ گفت داره ولی میدونستم که این کارو نمیکنه آدمای مثل استردلیتر عمرن از این کارو بکنن یه کمی تو دستشوی موندم و به جین فکر کردم بعد منم مثل استردلیتر برگشتم اتاق. جلو آینه وایستاده بود کروات میزد نصف عمرش و پای آینه به فنا داده بود نشستم روی صندلی و تماشاش کردم راستی بهش نگی از مدرسه اخراج شدم و باشه یه چیز استردلیتر خیلی خوبه اینکه لازم نبود سر هر چیز کوچیکی براش کلی دلیل و برهان بیاری درست برعکس اکلی گمونم به خاطر اینه که به کارهای دیگران علاقه ای نداره آه آره آره دلیلش همینه ولی اکلی فرق داره اکلی کسافت بدجوری فوزوله استردویتر کتمو برداشت بوشید پس نری اخراج شدنمو جار بزنی ها این دومین باری بود که بهش تذکر میدادم نمیگم بابا اح! سیگارم کدوم گوریه؟ رومیزه هیچ وقت خدا یادش نمیمونه کوفتیش کفتیشو کجا گذاشته زیر شالد وسیلی سیگارو گذاشت توی جیب کتش یعنی جیب کت من یه هایی روگوشیه کلامو کشیدم جلو داشتم احسابی میشدم کلا زود جوش میارم حالا کجا باش قرار داری؟ هنوز نمیدونی؟ نمیدونم اگه وقت کردیم نیویورک. از حضرتی که جملهش داشت خوشم نایمد به خاطر همین گفتم لابد نمیدونسته تو چه حروم زده خشتی پیستی اگه میدونست شاید نهانیم صبح از مدرسه میزد بیرون آره راست میگی راحت نمیشد پنچرش کرد آقای کپسول اعتماد به نفس بود حالا از شوخی گذشته انشارو مینویسی؟ کلایشو گذاشت و آماده ای رفتن شد خیلی به خودت سخت نگیر فقط سعی کن توصیفی باشه همش توصیف کن خب جواب ندادم رو نداشتم فقط گفتم ازش بپرس ببین هنوز شاه و ردیف عقب نگه میداری یا نه گفت باشه ولی میدونستم که نمیپرسه حالا سخت نگیری گفت و از اتاق زد بیرون بعد از رفتن استردلیتر یه نیم ساعتی و همونطور روی سندلیم نشستم به جیم فکر کردم و استردلیتر عوضی و این حرفا قراری که داشتن اونقدر عصبی می کرد که نزدیک بود خلشم گفته بودم که این استردلیتر از اون آدمی عوضیه یهو ها مثل همیشه بی هوا از بین پرده های همون سرکلش پیدا شد اولین باری بود که از دیدنش خوشحال می شدم اومدنش باعث می شد ذهنم از اون فکرای قاراش میشه کوفتی خالیشه. تا نزدیکه شام موند و درباره همه اونایی که تو پنسی ازشون متنفر بود، حسابی زر زد و یکی از جوشهای درشته رو چونشم هم کند. حتی به خودش زحمت نداد روش دستمال بذاره. راستش اصلا فکر نکنم این آدم عوضی دستمال داشته باشه. حتی یه بارم دستمال دستش ندیده بودم